راژیو فیلم شوخی نویسنده همایون اسعدیان بر اساس فیلم قهرمان ساخته استیون فریزر بازیگران پرویز پرستویی فاطمه مؤتمد آریا محل بود. کسی حبیب رضاایی موسیقی محمد رضا علی غولی، کارگردان همایون اسعدیان تهیه کننده شرکت نمادین شنوندگان عزیز فیلم شوخی یکی از ساخته های سینمای کشورمون در سال هفتاد و هشت بوده از شنیدن اعداد و ارقام در این فیلم خیلی تعجب نکنید و با میارهای اون زمان این فیلمو بشنبید بشنوید. درد و شروار پوشیده دستاشو به هم قلاب کرده روی صندلی نشسته با پاهاش بازی میکنه و خیلی خجالتی صحبت میکنه داستانش مفصله سرتونو درد نمیارم همینقدر بگم که این پونزه روزه آروم و قرار نداشتم باور بفرمایید فرمایید از فکر این کیف خواب به چشم نیومده. به خودم گفتم آخه آقا رزا به تو هم میگن انسان یه خانواده ای شاید ال زندگیشون لنگ این کیفه زبونم لال زبونم لال شاید ساید این کیف الان از قصه گوشه بیمارستان افتاده باشه ببخشید شغل جنابالی من یعنی حقیقتش شغلم یعنی تخصص اصلیم خط میخی و ترجمه متون باستانی و اینجور شیزاست اما الان توی آژانس تاکی سرویس کار میکنم بلاخره رو زندگی کرد کی سر که من باشم؟ سرشو پایین میدازه این همه خلافکاری برای چیه؟ اون بی پدر مادری که این کیف از شما دوزیده داستان داره یعنی زمونه عبض شده بله اوز میخوام شما آقای... فتلی، رضا فتلی جناب فتلی، ارزش کار شما قابل جبران نیست ولی خب مجدگانی ناقابلی من... خیلی باید ببخشید من باقا واقعا ببخشید من این کار رو به خاطر پول انجام ندادم همین که امشب راحت میتونم بخوابم برام مهمه قصد تو نداشتم به هر حال من مبلغ سد زارتو من رو به عنوان مجدگانی برای یابنده کیف در نظر گرفته بودم رضا وارد قهوه خونه ای میشه که مردا مشغول کشیدن قلیون و خوردن چای هسته یا الله به پیرمردی عسا به دست به دو مرد سیویل کلفت می اینم با کلی من می میرم تو میری ازش گرفتا الله شده تو مرد است تو گرفتی هفته پیش 200 هم میدادم مزما بوده اینا عجب کاریو عجب من نمیدارم چرا این نوچه های شما هرچی کیپ میزنم فقط توش سند و مدرکه منبت بهشون یاد بده کیپی که میزنم پولشم توش باشه که من مجبور نشم عدای آدم های نجیب و در بیارم برم براتون مجدگانی میگیرم آقا رزا یه اصلا برد بردم بیا تو کار ما قول بهت میدم سر شیش ما نشده بده یادی که صاف کنی هیچ پول پول به جیب بزنی نوچ بارون همین جوری هم هلال هرمون معلوم نیست, نیست. پیرمرد اصابه دست با کتوشه رو پیش رزا مرد نوش فکر کن آقا رزا به نفت دو مرد بلند میشه آه. اه؟ آه. از حسابه خن میکنم رزا لبخنی روی لباش میگه به فرمی صفت. ما باد گره میزدیم دیگه کتو از پیرمرد میگیره از توی جیبش پنجاه هزار تومان بیرون نده یه هزار تومنی هم به پیر مرد داره پیر کتو اون میده رضا به یه پیر دیگه که میخنده نگاه کنید پیش پیر میده و یه تیکه زیر فنجونی نقره از جیبش درمیده رزا حسابی کنف شده. بله، اون آقا رزای محجوب و بی و پایی که توی خونه آدم پولدار دیدیم و آقا رضای که برخوردش با لاتای قهوه خونه دیدیم توی مجالس عروسی به همراه گروه نوازندگان خانندگی هم میکنه. با کت و شلوار شیک و دستمال گردن. خبران نوه میکنه صدا جهان رسیم و رفتیم كتاب زندگی بستیم و رفتیم ای مادر غم در خبرون تعدادی دوره قاب جمع شدن همراه با رضا گریه میکنه گردش من باز هم عروسی و چراغونی و رضا به همراه پسرش علی که هشت نه سالشه توی دادگاه حضور پیدا کرده و در مقابل برادر زنش در حضور قاضی از خودش دفاع می کنه <متصفح> ایشون مطربه مطرب, مطرب کده ما خا؟ من خاننده سرودم حاجه خیلی وضعه بخشی رفتم شما این مرکبات خریدم هر و هم خرج خودم علی آقا رو در میارم همین که خدمت یه مملکت تا روی مملکت و خدمت پیشکشه. با همین سیاه بازی ها خوهره ما رو بدبخشن والله حاج اون خدا بیا مرزم راضی نیست این طفل معصوم زیر دست این بزرگ بشه تو از کی طلبه مرده ها رفت کردی؟ بعد شما جا آقا ایشون میگه من کار کاسبی ندارم رفتم باغ خریدم، صاحبش هم آوردم اینجا که دیگه اصلا بهونه‌ای نداشته باشی. رزیددم در می و با جمعیتی روبرو میشه. بفرمایید تو دم در بده، بفرمایید خوش می‌کنید. چه رویی داره؟ رو... تارابادی جوونی لاغر و قد بلند و ساده با موهای کم‌پشت و سبیل و کت و شلوار مستعمل و پیرهن یقه بسته از بین جمعیت وارد اتاق قاضی میشه. آقا صاحب‌زنه ایشونی. از ملکین شمال سرشناس ما بده بولش هم تمامون کمار پرداختم تا یه ماهی دیگه هم میریم مرزه رو سند میزنیم تمام درست میگم آقا آقا درست میگم آقا آقا با شما بله بله, بله، بل. سند میزنیم توجب پرمینی ها چه قا سند تو آه نداری با ناله سودا کنیم باغ آق بخری حاجبا. این یه پاش زندونه یه پاش شلان والله این بچه بر میشه بابا بچمه خودم میخوام بزرگش کنم قچم گیری کردی با روغش نکن اینجا دادگاهست شما میخوا بیرون نقاد تا را بادی عقبقب میره که به جامعات دمه در میخوره موقع بر رفتن نگاهیم به علی میاندازه گوشکن آ زار منم دارم نمیخواد بچه تو ازت بگیرم برای همین یه مغلت دیگه بهت میدم یک ماه اگه راست گفته باشی سر و سامونی به زندگیت دادی که هیچ دست پسر تو میذارم تو گسه اما اگه بازم دروغ سر هم کرده باشی حکم عدم صلاحیتت رو میدم بچه‌را میسپرم به خانواده مادرش تمام رضا به فکر فرو میره برادرزنش دم در ایستاده و لحظه‌ای با هم برخورد میکنن رضا نگاهی بهش میکنه و پیش علی میره که کنار باغچه‌ی پیاده رو نشسته رضا هم میشینه علی که سرشو پایین انداخته که و شیر چرا نمیخوری سره علی همچنان پایین و اصلا نگاه نمی‌کنه. خیال کردیش شاه خان کرده. این اینجوری نگاه نکون. کلی ملک و املاک داره خودش نمی‌دونه. بهش ارث رسیده. ارث که می‌دونی یعنی چی؟ علی نگاه آغرند در صفعی به پدرش می‌کنه. رضا رو می‌گردونه. اگه راستش گفته بودم که همین امروز حکم می‌داد. حالا آغلن یه معقب افتاده خودش یه عمره. موقعچی بشتیش نو خرسن برد دستی به سر علی می‌کشه امثال کم تانته دادی دو تایمون می‌ریم شمال تو باغ خودمون دست به کار می‌شیم و می‌افتیم به جونه کار رضا خودکاری عجیبش در میاره عین خودکارو می‌گیره نو نو امطانش کردم سالمه بیا رشید بیا علی با سر میگه بله وانت قرمز رنگ درب و داغونی وارد یک کوچه قدیمی میشه در قسمت بارش یک آبگردکن قدیمی هست و بلنگوی ای هم روی سقفشه ابراهیم یا همون تارابادی کلاه بافتنی به سر از در شاگرد به سختی پیاده میشه ظاهرا در راننده خرابه و باز نمیشه یه دست شلوار کرم شیک که به جالباسی آویزونه و یه گلدون گل رو از توی ماشین بر میداره و راه می از کنار یه وانت سفید که تعدادی صندلی بارشه و یک نفر پشت اون ایستاده رد میشه. وارد خونه با در کوچیک سبز میشه. یه کارگر بیرون میاد. ابراهیم از راهرو اینا به تاریکی رد میشه. وارد یه حیاط بزرگ قدیمی چندره میشه و چشمش به پیرمردی میفته که به سختی با واکر توی حیات راه میاد. پیرزن ارمنی صابخونه ابراهیم به پله میرسه که منیر خانم زن موسن بالای اون نشسته و خیاطی میکنه. از خانم. اشتباهی نباشید. باور دفترچی این مغزی که فرموده بودی؟ و این مغزی؟ کرم نبود من سفید کردم. واسه شرط کردم که نبود، انجام بدی. دختری جوان پرده اتاق رو کنار میزنه و به ابراهیم نگاه میکنه دختری مونی خانم مونی خانم پاکت رو باز کرده و از توی اون یک کش سفید در رو اگه به کارتون نیومد صد میبرم عوض میکنم هر جون میره شماست چشمات ایبایی را دیفیدی کرده؟ از دختر چشم برده میتونه ای باطمان میکرم چشمات ایبایی را دیفیدی کرده؟ نخی می نخی میره. ببخشید بذ بذاخیش. ايش بس دیگه. داشی ببینید. ابراهیم میشه رضا که یه رینگ دو چرخ ها؟ ما با هم دوست. با رب مدان. ما شاء الله به تخته روز به روز داری جوان‌تر سیرون سیرونه. چیه؟ باز اولش شو چی این زبون شدی؟ اجازه بده. سیرون ماده ببین آقای علی که مراقب باشیم پرهیز کن از خیلی چیزا. مراقب سلامتیتون باشید جونت مونی خانم خوب بود زبون میشی. سوت دادا عقرب زبونت داده لال مونی گرفته بودی؟ من که به گفتم که من دروغ نمیتونم بگم دستپاچه میشم. دستپاچه آقا رو باش. خراب کرده بود دست دستپاچه. رضا قضا رو هم میزنه. این که مستقله. کو تو شربا رو کرم رنگ اومده بود. البته رو می‌شازین هرسی. درستش می‌کنم. خدا کنه قبول کنه. آ شانس بیری قبول نکنم. اصلا زبانو به خیر نمی‌چرخنه. از قدیم گفتن مادر رو ببین دختره ببین. این زهره‌خونه شما یکی دو سال دیگه واستخون بهتر کنه تازه میشه مثل ناناش. تو اصلا نظر نده بچه‌ها. به حال خود. چی شو؟ گرفتم. بلشوره هزار همشید به فهمین نفهمی بایم ابراهیم رضا با شنیدن صدای مونیل خانم دم پنجره میان رو نگاه میکنه پیرمرد واکتش رو کنار دستویی گذاشته بود رفته داخل آقا به بهونه مصروفیتی سیگار میکشه خوبه سیگار میگی چیز دیگه که نمیکشه همین کارش منو وقت تلف کنه من رو کرده بزرقه بزرقه افا, این هم چی بزنه آمد. تو که به خر بگی خواننده های براش گل خب بنده راست میگه دیگه سیگار برای ضرر داره چی که زن نیست که مردشون فرده، اول بابا، اول منو ریخت کردنه. خدا اوقات شما رو رحمت کنه. آقا باشه جانیت. اوه وان کوتو به موس، eine که جذبه داشته باشه، الان به همه جا میرسونه. منم سر و سامون میگیرم. با اون کسی میشه ها. درس هم میذارم. دانشگاه میرم. موتورشام خب باله حالا نمیشه یه رشته ساره تر انتخاب کنی مسخره میکنی آخه مادر است سه سال پنج ابتدایی درجه زدی نتونستی راهنمایی حالا بخواد دکتر بشی خب اون موقع وضعیت فرق میکرد امکانات نبود آها پس کم بود امکانات که میگن منظور زهر خانومه خب اگه اینجوری باشه که مادامی میکنه تش خیلی وسیط تره اجالت بکره همین چون رو از میگیره ایچه این رودوازی ها بگونم دادگاه چی شد نیچه بازار بدبختی ما معقب افتاد اونم که شش به هم وزری. تمام هم بگم جون. بیا لحج نکنی وانه رو بفوشیم تا هم کارت بیفته اون اسم پروش خودت دادیم نوش. درست میشه بلخری جوریش میکنن رو با, با قهوه خونه پاتاق رزی رزا مقابل همون دو مرد نشسته یکی از اونها با زنجیری که دستش بازی میکنه دیگری قلیون میکشه و با رزا حرف میزنه از شرک زدی بیرون 20 کیلومتر که رفتی دست راست یه جاده فریه پلیس را رو دور میزنی میفتید تو جاده اصلی اگه یه وقت با گشتی ها رو شدی خیلی راحت میگی اومدم اینجا جوجه هایی یه روزه بخره آخه تو اونجا چند مقدری هست حالا اگه اینقدر سال هست که میگی چرا یه عیبان رو میفرستی اولا اینه بدش کن بولان تا اون چند بار رو را رفته و برگشته شناختنش خب حالا امایی ما سعی سالم رفت میم و برگشته آیا تیله چی میشه سهمه تو بعد از کار میگ نکن او جنس را کجا باید تحبیلی گرم بری یه بسه به تعویل میده رضا اگه جیر بیفتی همش گردن خوی تا خایمارم و وسط نمیکشی تو این کار آدم فروشی یعنی تمام. شب رضا با کلاه بافتنی که سرشه داخل همون وانت قرمز در و داگونه توی جاده خارج از شهر حرکت میکنه بارون حسابی میباره و برف باکن ماشین کار می‌کنه. تنها ماشین توی جاده تنهاست. رضا نگران به اطراف نگاه می‌کنه. جاده خیلی تاریکیه رضا چراغ توی ماشین رو روشن می‌کنه. میکروفون رو برمی‌داره و می‌گید یک جوجه روزه خریداریم. که توی جاده تاریک حرکت می‌کنه، یا خدا من بالا نگاهی به آسمون میکنه مدرد که میدونی مجموع اگه اتفاقی یفته سکسل یا ما بابا خیلی جامعی رزا نگران به راهش ادامه میده که ناگهان هواپیمای رفی آسمون میبینه که داره به زمین نزدیک میشه هواپیما از بالای سر ماشین با فاصله کمی رد میشه رزا سرش رو میدزده توقف میکنه نگران نگاهی میکنه و در فاصله خیلی دور هواپیما به زمین میخوره رضا با وانتش به محل حادث میکنه بارون همچنان میباره و برفاکره کار میکنه ماشین متوقف میکنه پیاده میشه نگاهی به هواپیما که زمین خورده و دور میکنه میندازه ماشین رو روشن رها میکنه و به طرف هواپیما میره با فاصله از هواپیمان نیسته باز هم نگاهی میکنه بر میگرده درخواست کمک مسافرها رزا رو به خودش میاره معمولیتش رو فراموش میکنه و به طرف هواپیما میگه رزا بازور و به زحمت در هواپیما رو باز میکنه خودش به زمین میافته چند نفر خارج میشن رضا وارد هواپیما میشه باز هم تعدادی خارج میشن دم در با چراغ قوهی که دستشه نگاهی به مسافرها میندازه عدهای پیر و جوان و کودک روی سندلی ها افتادن و نمیتونن بلند شد رزا کمک میکنه مردی رو بلند میکنه بیرون میاره و جلوی ماشینش که چراغش روشنه میذاره مرد دیگه رو بیرون میاره و کنار قبلی میذاره. یه نفر دیگه در کنار دیوار. چراغ میندازه. دختربچه‌ای رو میبینه که عروسک توی بغلشه و به رضا نگاه میکنه بلندش میکنه و بیرون میاره. زمین بیرون حسابی آب گرفته. بازم از روی هواپیما مردی رو بیرون میاره و کنار بقیه میذاره. یه دختر دختربچه‌ی دیگه که بیهوشه. اونو هم بیرون میاره. خودش هم به سرفه افتاده و نفسش گرفته. وی هواپیما پناه ما میندازه می گردن بندی رو کف و هوا پناه میگیره آروم میشینه و بر می یکی که پولم هست اونم برمیره نور میندازه تا بهتر ببینه تو سر سندلی دنبال کی میگردی یکی رو طرف پولم کردی دهیش چی جملات برده بیا کمک بده رضا به طرف زنه پای زن گیر کرده پاشو آزاد میشم خب اونا مجبوران تو مثل خرجنگ کچپش رو بدن با ایتا. من خودم میرم بنده خدا رو بیارم میگه مردی روی صندلی بغلو رو میگیره رضا مردو کول میگیره که ببره یه نفر پای رضا رو میگیره رضا پاشو میکشه و کفشش توی دست مرد جامعه رضا بیرون اومده و مرد رو روی زمین کنار بقیه میذاره و بر توی هواپیما هنوز تعدادی موندن که نیاز به کمک دارن رضا چرا قوه میگذه رابلای سندلی ها دنبال کفشش میگرده آنو با آقا جونو کسیه لین کفش نیده؟ آقایمون هر کی لین کفش رو برداشته بده بابا جونو مادرتون هر کی لین کفش پیدا کرده بده به ما با شنیدن آژیر ماشین پلیس رضا نگران میشه چرا قرمز رو روی دوشش میندازه از خیر لیگ کفشش میگذره و خارج میشه پیرمردی رو میبینیم که افتاده کف هواپیما و کمک میخواد نیروهای کمکی پلیس و آتش نشانی رسیدن کمک میکنند تا بقیه مجروحین رو از هواپیما خارج کنند رضا هم آروم آروم جوری که جلب توجه نکنه سراغ وانتش میده نگاهی به ماشین پلیس میندازه که مشغول کار خودشونه. خیالش میشه معمولین آتش نشانی رو میبینه که برای کمک میدون سوار ماشینش میشه و میره توی خونه ابراهیم کنار پنجره توی تاریکی نشسته نگران نیومدن رزاست البته گاهی نیم نگاهی هم به پنجره روشن منزل زهره میندازه. رضا از راه میرسه ابراهیم از پشت شیشه اونو دیده رضا یه صندلی هواپیما رو به دوش گرفته به در خونه میرسه بابا در باز میکنه وارد راهروی ورودی میشه. کی؟ آره؟ آخه سلام وارد دفتری. هنگیس کنی قرزنان توی خونه خودش میره. رضا هم با پا در خونه خودش رو باز میکنه و میره تو. ای ای چه این شکلی شدی تو؟ آها داره. این کجا چه کفر رفتی تو؟ دهنتو آب بکش. کف رفتن کدومه؟ تو سر اسماعیل انداز کرده بودن، محمد اون گرفت خریدی ليش. اون هم داشتن، پولم نرسید. این کارا دوباره چه خلافی بودی؟ خدا عالمه. چاخان سرهم هم نکو. شاهخان کدومه؟ بسات برات تعریف کنم، چارشاخ میمونی. تو فکرشو بکن. تو بر و اون داری میری. اونم تو بارون، تو تاریکی، اونم دنبال چه کاری؟ چه کاری؟ چه بماند کجا بودی؟ تو بره بیا حالا دنبال هیچ کاری هم نمیرفتم خوش خوشخوشک بس خودم داشتم میرفتم که یهو دیدم گروب یه هواپیما جلوم خورده یعنی جا خالی نداده بودم شاخ به شاخ زده بودم بهش و باز خسارت هم بهش میدادی آخا تو یه چشم هم زدن شد محشر کبر زدیم تو آتیش یعنی نه آقا نزدم تو آتیش بشه خودم گفتم برم نرم آقا رفتم رفتم تو آتیش حالا مرد زن بچه اونم چه بچه نازنی با رسه خودم رسوند وگرنه به سلامتی همشون زیق رحمت سر کشیده بودم اینه که شانسی زر از ما خوششون اومد دیدم ها چه اینی گرفته، نگرفته گفتم حالا خودت برش دو چه؟ بر. ست دفعه گفتم دروغ نگو عیبه بله خب دروغ بده نه اگه من این مزخرفات رو تو هم میکردم تو بابا هم میکردی معلومه کنم اگه من خرم رزا میروی سندلی هوا پیما میشینه و یه لنگ کفشش رو در میاره کفش رو پرت میکنه وسط تو اینم از کاسبیه میشه اونا خوش بدکاریم کیفی ها یعنی هر چند سال یه بارش نیست یه حالی میشه روی صندلی لم میده برون اون اول چراغ خاموش کنم بعد دید بزنم ابراهیم چراغ خاموش میکنه کنار پنجره میشینه و نگاه میکنه رضا هم خودشو توی صندلی هواپیما جا میکنه نگاهش به قاب عکس زن مرحومش میفته و عکس پسرش نشد یار نشد این خسته میشه مردی توی بیمارستان مصاحبه تلویزیونی میکنه. یکی از مزیای تلویزیون وارد بیمارستان میشه. از قسمت اطلاعات سوالی میکنه و به طرف بخش حرکت میکنه. ممکنه فهمید توی سانهای به کسی آسیبی رسیده یا به لطف خدا این حادثه هیچ صدمه جانی نداشته و تمام مسافرین سالم شما که از مجربه قرار شدی حدود نیمایی شب بود که ما در تطابق این زمان خودمون به محل حادثه رسیدیم البته در اون موقع اکثر مسافرین به کمک یک مرد ناشناس از هواپیما خارج شده بودند سپاسگزارم شما که از ماجرا سوژه شدی حدود نیمه های شب بود که میگن همینه تطابق این زمان خودمون به محل حادثه رسیدیم البته در اون موقع اکثر مسافرین هواپیما نگرون نباشیش که ترش نشه ده خون از دماغ کاسه نیومده آمبولانس شده ولی هیچ کی ترش نشه ده خدا خیلی دوستشون داشته این واقعا یه معجزه است وارد اتاق میشن آ خواهر مرد نیست نه پرستار نزدیک میشه شما نکن اینجا بیمارستان شما خواهر مرد رو می‌بینی چرا از اتاق بیرون اگه زیاد کنیم کنی میگم کانا پرستار بند ذاتت بیرونا بچه بچه‌ها هول میکنه ببینم چجوری رو سرش اینجوری با دست زل بزندم شو آگهی آگهی چه گزارشی شده. تو تو خودش مید. مردم با همکارش تمید. قرار بگیری؟ کاغذ خودکارش رو میز میذاره زن و بلندش. کار بار از این اتفاقا میافته ها با. حالا افتاده. نباید این موقعیتو از دستا. همه وسایلمو گم کردم. یادت باشه برام یه زبطه صوت بیاری. کاغذ یادت نره ها. <تصفيق> مردی سیبیلو کوتاه قامت کلاه به سر دست گلی در دست از در شیشه رد میشه و به ایسکای پرستاری میرسه. خانم سلام مرد کلاشای سر بار. بفرمایید. اتاق خانومه کدامه؟ اتاق خیلی کمیه. دستی سرشون کشه و به طرف اتاق. خانم سلام. از خبر کنی. اتاق سیما میاد. سیما مقابل دختر بچه‌ای روی تخت نشسته. انطور خدا عجب تکون نخون. راحت راحت باش. حالت چطوره؟ شما به زحمت اختیار داری. شما ای چیز این سیاوش. نمیگه. گزارش خبر همیشه هست ولی اونی که محمد... این بچه الان یه من بکنم با اجازه خب. بیادت برسوار. نیست که کی تو رو نجات داد؟ نه. توها شب ندیدی اصلا نمیدونی من نکو اصلا مهم نبود من شب بابا مامان کجا خبر ندارم هنوز بهش نگفتم این بابا, بابا چیکار است مامورو بیمه استم گله کار بیمه مسافراتو میگم قضیه این بابا که همون نجات داده چیه منم نمیدونم اینجوری که میگن انگار یه راهگذاری بوده قضیه سقوط هواپیما رو میبینه بعدم عین سوپرمن سر میرسه یه چنتایشون هم در میاره و نجات میده بعدم پر میزنه میره قشنگ قش تو من بنویس شاخک های سیما خیلی خوب کار نکنه اینجا سوشه ها کم گیر میاد اگه فکر همونه رو هم برسیم ها میتونه زندگی همه همونه زیرو کنه منظورت چه؟ یه هواپیمایی سقوط کرده کسیم که هم که تواریش نشده که عجله نکن من به سقوط هواپیما کاری ندارم برو تو کار سوپرمن رزا تو قهوه خونه و در کنار دو مرد برتر قیمت پرندهی در قفس چونه میزنن. اون دو مرد لات از راه میرسه و پشت سر رضا. نه بالاست، خیلی بالاست. من خودم قناری برات میارم عروسک. اونم نصف چرا چی سر محمد میذاریم؟ که زیر قیمت گفتن آقا جون هر نگو. گوش بوق براش کلاغی نه زغ نمیذاره. چند میدی؟ معلومه هم دم بالای شاه میگردن. نه چهار آره جون خودت. داستان داره. این رو داست آقا این یه قلم نداشتی حالا من سیام کنی؟ سیاه کنی سیاه کردن کدوم آقا ورزو یعنی نشد اوزا کشمیشی بود یه با کلپ تلپ یکتو کنار جاده مهمورم این مورم علاقی خیلی سنوشا آخر قصتت بگوسته اوزا بیریش بود منم مجرور شدم انداختم دود شکردی انداختی دود بچه با دو دست کورامه که طرفی برون این وسط این خودی جنست میکنم مثلا چه غلطی میکنی؟ درست صحبت کن درست صحبت نکنم چی؟ مرد سیبیل کلوفت مشتی به صورت رضا میزنه و روی میز میافته چند نفر دیگه بیخودی گلاویز میشه. رضا بلند میشه با سر تو صورت مرد سیبیل کلفت میزنه حسابی بالا گرفته. قهوه خونه به هم می رضا دوتا میزنه دوتا میخوره و پایانخوااه رضا توی عروسیه اما با مرسی ای کارش رو تمام میکنه. مردی میانسال از کار رضا ناراضیه دو نفر برای شعبت بازی روی صحنه میفرسته رضا با اینک دودی از روی سن پایین اومده عینکو رو در میاره به مردی میانسال میده رزا کتش رو در میاره صورت رزا کبوده دستمال گردنش هم باز می صدای تلویزیون توجه رو جرم می فیلم حادثه هواپیمای است بابا 얘لره سیاوش خواهر سیناست اینکه چه اتفاقی و چه چیزی باعث شده که هواپیما مسافر صعود کنه موضوع مرد با یک مأمور میروی انتظامی وارد اتاق شده رضا حواسش نیست مأمور پشت سر رضا بعد از سقوط هواپیما بله یک گذر یک مرد فداکار سرگشتو اون جاده خارج از شهر رو دور افتاده معلوم نیست از کجا میرسه به کمک مسافرین میاد و با ترفندش خودشه به اینجا محل مدارد. کسب مدارد. عروضیه به خدا زشته به خدا زشته شهادت کلات نکنیم اینا منتظرن که نشسن این مرد از ما چه که بی معلده وقت مامور دولت نگیر را بفریم کجا زندگی میکنه چه اما دلمون میخواد که پیداش کنید باهاش حرف بزنیم و کار با ارزشش تکمیل کنیم. شما هم میتونید به ما کمک کنید. من اینجا از همه مردم شریفی که از این مرد اطلاعی دارن خواهش می‌کنم که با ما در برنامه تانی شب تماس بگیرید. سیما پشت ماشینه. گوسری بغل دستشه و سیاوش برادرش صندلی عقب نشسته. همه مسافرا رو درآوردم تا رسیدم به اون کس که دلم می‌خواد. از اون پولداراست خودشو با نوشکه دختر بچه 7 8 تو همین هواپیما بودن همین هواپیمایی که یه دفعه آقای سوپرمن پیداش میشه و اونا رو نجات میده اینجوریه است که یه احساسات انسانیش قلمبه شده دختر بچه روی صندلی حرکت نشسته و به نقطه خیره شده سرش چسب کن سیما آروم بغل دستش میده کوسدی بغله غل پدرگزاری اصابه دست که گردن بند طبی هم بسته دورتر ایستنده و سیاوش هم کمی دورتر که نگرانی نیست دکترها میگن شوک روحیه تا چند روزی دیگه حالی سیما دست به سر دختر میکشه خدا ما رو خیلی دوست داشته که اون رو سر راه همون قرار داره من زندگی خودم و نوام رو به اون مرد مدیونم آقای کوسدی شما از صرف من وکیل. نگران هزینه کارهاتون نباشید من همه رو تحمیل میکنم اون مد رو پیدا کنید به جبران محبتی که در حق من کرده از مال دنیا بی نیازش میکنم خیالتون راحت باشه شبانه روز مشغولیم و برای این کار تمام بچه های روزنامه رو بسیج کردیم سمنن آقای کیمرام که از مدیران صدا و سیما هستن تو این پروژه ما رو یاری میکنن ببخش دوایی کریمی شما در لکن. شما هیچ مشخصی نشونه چیزی از قیافه اون آدم یادتون نمیاد. برای اینکه بتونه به ما کمک کنه زودتر پیداش کنیم. متأسفانه نه. ولی یادم میاد. یلین یه کفشش اونجا گم کرده بود. داش دنبالش میگشت. سیما پای تلویزیون نشسته فیلمای حادثه رو مرور می‌کنه. سیاوشم روی صندلی کمی عقب‌تر نشسته. لام داده و چیزی پیدا نمی‌کنه. تو هم هیاهی یست من اقلن ده دفعه نشستم همه این فیلم رو نگاه کردم فریم به فریم هیچ سیما به فلفور میره کجایی هروم من تو اگه ده تونم به یه نفر کمک کنی تا آخر شب برای پنجاه نفر تعریف میکنیم یه هفته هم کیفشو میکنیم فکر میکنیم خیلی آدمی این بابا اسمش همه جا هست تو روزنامه، تلویزیون، رادیو اما خودشو نشون نمیده چرا؟ بله، چون توی زندانه رضا مسئول پخش قضاست و با گاری غذا و صورت کبود راه میفته زیما کفش رو از پرستارش گرفته کفش توی پلاستیکی پیچیده شده سیما به طرف پیر میره و سیاقش نگاه میکنه سکر نمی خودش هم باشه چون کبشه خودش پاش بود ولی یه جوری محکم گرفته بودش که انگاری به جونش وصله حال شما خوبه پدرجام؟ حرف نمیزنه تو خودشه خیلی نامدم خیلی نامده اما به نجات دار یه تیتر جدید روزنامه هر هفته لنگ کفش خوشبختی یه تیتر دیگه هر کسی از خود می‌پرسد چرا لنگ کفش او گم نشده دفتر روزنامه تعداد زیادی مرد جوان و پیر با یه لنگ کفش در دست پیه صف ایستادن یه نفر اونها رو مهار میکنه کوسری دم در میان پیرمردی دو لنگ کفش تابتا ما پیرمردی دو لنگ کفش تابتا دستشه از دو بوده؟ کلی نمیدونم با اما سری پیرمرد رو به بیرون راهنمایی میکن. سیما به دفتر روزنامه رسیده. صفح کفش به دستنا تا توی خیابون هم رفته. همه به تمام مالی که پیرمرد قول داده، اومدن خودشونو جای رزا جا بزنن. سیما از کنار صفح طولانی رد میشه از لابلای جمعیت وارد ساختمون میشه. وارد دفتر روزنامه میشه آقای قون. آقا ما آقای روزن بزن صدا و سیما آقای که منو پیداش میکنی که هر جا بر ما چایی نفست خانون می نینی باوندی کردی ما این همه سیندرلا داشته باشی با یکی دیگه از مساورا صغف کردن خوب یادشه که اون بابا یه وانت داشته وانت قرمز ولی اصلا این مارکش یادش نیست سمی جرده صدا شده هم نیان وگرنه همی الانی که ست تو وانت قرمز در سبت کشه چند تا انبار دوروبره محل سقوط هواپیما بود ولی کسی خبری نداشت میگم میخواد دو سه نفر از اینا رو برات سوا کنم با واسه مصاحبه کنی باوستا اون با تی اینا نیست اینا همش رو مدن کاسبی اون قضیه اش با اینا فرق میکنه در زندان قرار یه نفر آزاد بشه همه دورش جمعن رضا هم کنار دستشه صدای موجی تلویزیون رضا رو متوجه خودش میکنه نزدیک تلویزیون میشه سیاوش مجری تلویزیون برنامه را اجرا کرد. به پیداش کرد. حالا شما، شما و دوستانمون در مخاطبات بالاخره به نتیجه و اون مرد فداکاری که هممون دلمون می‌خواست ببینیمش و بشناسیم، صدا مردی که در یک شب بارانی به کمک ده ها هموطن ما اومد و اونها رو از میان آتش و دو بیرون کشید. آقای ابراهیم تاراپ. ابراهیم به نام برامار... برامار... خدا. رضا شده مادر... آقا. آقا. آقا. کار کاری کار... بالا. کسی باور نمیکنه. رضا به ابراهیم که با همون کتو شلوار در بوداقون جلوی سیاوش توی تلویزیون نشسته نگاه میکنه. رضا ناراحت و مقمعوم توی راهرو قدم میزنه و در تلویزیون میبینه که ابراهیم به ایادت یکی از حادثه دیدگان رفته و ازش تشکر میکنه باز رضا قدم میزنه. سی هم اونجاست و توضیح میده که ابراهیم چه فداکاری کرده. رضا هیس میخوره، اما کاری نمیتونه بکنه. مدتی گذشته رضا آزاد شده. صورتش هم خوب شده رضا به دکه رسیده تمام روزنامه ها و مجلات عکس ابراهیم رو چاپ کردن و خبر در مورد اون زدن رزا که کلاه کشبافی سرشه روزنامهی برمیدار و میخونه اون رو روبروی دفتر روزنامه است داخل دفتر کوسری با تلفن صحبت میکنه منشی پای کامپیوتر مشغول بازیه رضا وارد دفتر میشه نگاهی به دورو برمیکنه نگاهی به منشی. نزدیک میز منشی میشه. دفتر روزامه. پوزری که با یکی از همکارا صحبت میکر با شنیدن صدای زنگ به سمت تلفن میاد خانون بازی کردن. بسته. چرا تلفن رو جواب نمیدیم. بله. گوشی رو, رو روی تلفن میزره. نگاهی به منشی میکنه و به اتاق میده. در رو بازی میکنه. ابراین. بله تلفن موتو کارده. رویداد ما دوباره واسه. رویداد. ابراهیم که مقابل سیما نشسته بود سمت تلفن میره و گوشی رو برمی‌داره. سلام. حکم تلفن رو نزده. سلام علیکم. عینا. ابراهیم از تعجب چشمش گرد شده. سیما بلند شده به طرفش میگه. بله. خير عینا. ابراهیم مات موند. شما؟ سعیدی اومد. سیما نگاهی به ابراهیم نکنه. ابراهیم ابراهیم ابراهیم بله. اتفاقی افتاده؟ نه زهره بود زبون ابراهیم بند اومده زهره بود دیگه منتظرمونه باید بریم خرید ابراهیم دست پاچه میره ابراهیم سوار بر وانت جدیدش از جلوی ساختمون روزنامه دور میشه و رزا رو میبینیم که لبخند به لب پشت درختی رفته و ابراهیم رو نظاره میکنه ابراهیم توی خیابون با ماشین در حرکته به کوچه خونه رضا رسیده توقف میکنه با عجله وارد خونه میشه از پشت پنجره داخل خونه رضا رو نگاه میکنه کسی نیست صندلی هواپیما هنوز همونجاست ابراهیم سرشو به شیشه تکیه میده توی عالم خودشه که مادام از پشت به اون نزدیک سلام، میشه سلام اتفاقی افتاده نه سلام موسی سره خسته نباشید. از تو والی یادی از فقیر خود قرار کردی باعث خجالت به خودا گرفتاریه ولی رد میشه ده اینجا خواستم ببینم رضا برگشته هنوز که بر نگشته فکر میکنم این دفعه بر جای گیر کرده جوانی شریه علی واسه میز دلاتم براش سنگ میشه شما هم که گذاشتی رفتید اینجا سوت و کور شده. ما فکر می‌کردن یه کاری براش می‌کردید. شما که دیگه با بزرگم رفتمم کردن سرشناسی. با شنیدن صدای زنگ و آژیر دزدگیر ماشین ابراهیم دوان دوان بیرون نگاهی به دور و بر می‌کنه. لحظه‌ای به ماشینت هکی میده. ناراحت سوار ماشین میشه و سرش رو روی فرمان میذاره. لحظه سر بلند می‌کنه و می‌شینه. در جشنی که دور تا دور سن رو آزین بستن خاننده میخونه ابراهیم، سیما، سیاوش و کوسری هم هستن مهمانان زیادیم هم هستن از وجدانمون امروز اینجا داریم امشب مهمون عزیزی در جمع ما هستن انسانی که با فداکاری و از خود خودگذشتگی جان بسیاری از هموطنای ما رو نجات داده از آقای ابراهیم تارماتی درست ابراهیم میبینه که همه تشویقش میکنن با دل هرود دستپاچگی روی سن میره و میکروفونو از خواننده نمیگیره ابراهیم یک کت نو و شیک پوشیده نمیدونه چی باید بگه سیما لبخند میزنه ها ها. من کوچکتر از اونم که حیان برای مردم داشته باشم بند با. شرمنه بکنیم شرمنه بکنیم قابل شما یاداره به خدا بازم بگم بازم بگم بازم بگم بگم آقا یکی تو حال خودش ببینیم خود میخوام بگم که بازم بیتر از اون خدا این برای برنامه من زیاده ساخته چدا نهیه؟ مثل که خیلی خوششون نمیادیم نمیدیم با باید قطعه اوندش باز جه این شکش باقی که هنوز به جرمه کلاور داریم راز داشته شده دیونه شده همین آدین آتیش آدین رو به لا برم نرم آقا رفتم زن نرم بچه چه بچه های نازنینی چه حالی <تصحاب> شده <تصحاب> لی دوقومی سپ تو ن ب ضا با کلاه پشمی پشت و آویزهایی از این ظاهر میشه روی دو کلاه رو بر میدهما این اده دیدین داشتیم استفاده می کردی ابرایم ناگه هم با رضضا روبر رو میشه و سکوت میکنه. با مییم بفرمایید گوش میدییم خدمت خانم واقعی سلام ازکن. حتی میدید من کیه داستان منو یاقببرام از بچگی یه مردم. اصلا اولام همینطوری خجالتی بود کم رو، محجوب، فداکار. اصلا هر چی بگم کم بود. بچه که بود تو معذبش میکردن چی؟ بگو گوه. آلمات بچگیه دیگه. آخه ما هر کدوم یه لقب واس خودمون داشتیم. بفهم. ابرام ابراهیم شوتین. <تصفيق> ابرام شو دمت گرم که آبروی بچه هندات خرید نجات ست تا مسافه آقا هر جایی دیگه دنیا بود اول می کشتنشون برم خونیم از درد بخار هزار جوی نموسیه کی فکرش میکرد ابرام شوطه افتخار آفرین بشه بابا خیلی مرد از اینکه که چیزی نیست هنرمن از هر انگشتش هنر می باره صدای خیلی گرمی هم داره جون رضای رحمه خونه بخون خجالت نکش مجلس خودیه بخون <تصفيق> بابا تو که قد تاروخی نبودی یه بخون مردم سفا کنه جون رزا بخون خانم آقا آقایی لطفاً سکوت کنن ابرام شوته میخواد بخونه جون رزای یه بخون بخون بابا خجالت نداره که بخون مجلس خودیه بخون <تصفيق> ببخشی از آقای تاروادی و دوستشو خیلی تشکر میکنم خواهش میکنم بفهمید به افتخارشو حالا برای که یه هم حالا رزا هم سر میز اومده ابراهیم سر به زیر انداخته شما آقای پتری رضافته آقای دیگه با حالی درید ارسون یه سرویس بیا. زحمت بکشین من بوس برم. اومدمتون نمی‌شه. چه مزورنتی. آخر هفته در سیاق ابراهیمه. دورم جمع شدیم که قرارم داره عروسی رو بذاری. عروسی ابراهیم؟ ا؟ و و و چه شاه یه شب سیاق ابراهیم. رضا توی خونه روی صندلی هواپیما نشسته و مشغول تعمیر وسیله‌یه. صدای در میاد. نگاهی به حیاط می‌کنه. پشت حسیل پنجره ابراهیم رو با همون کتو شلوار میبینیم ابراهیم حسیل رو کنار میزنه و توی خونه رو نگاه میکنه رضا رو نمیبینه آروم در رو باز میکنه و وارد اتاق میشه نگاهی به اطراف خونه میندازه. رضا نیست به طرف صندلی هواپیما میره رضا؟ آقا رضا؟ رزا آروم از پشت به اون نزدیک میشه؟ دست روی شونه ابراهیم میزنه ابراهیم ترسیده برمیگرده سلام ترسوندی منو از اون در رفتی از این در اومدی شیعه تو نا اینه زدم برای اینکه که خیلی نامردی اینم برای اینکه که نگی خر بود بعدی رو باید بگو میفهمم خیلی نامردی خیلی نامردی حرف نزم, نزم. چی میخوای بگی؟ چی جاری بگی؟ گفتی رضرف حبس و زهر خانم و دریاب گول بابایی رفاقت تو تو اون رود بیاد؟ آخه بذارم گفتم هست میزن حرف هم چی میزنم تو سرت که بیشه ابرام چار کله تو اون مسافر را نجات دادی جواب بده تو را نجات دادی اونا میگن یه اونا قدر کرده ما تو یه ابرام شوته ای که تو مواهاره پخش کنن مردی که زپرتی فرق گوشگو به میکروفون نمیدونه سخنر مدام از پنجره میتونی بخورش. بخورش قلق میکنی دختریا با چی داری دوام میکنی هنوز زندگی با چونو کردی چیه آدم توی خونه نمیتونه دلت با خودش اختراع کنه برو بگی بخاط دیگه مدام نغ نغ کنان توی خونه رضا پنجره میبنده و پرده میکشه رضا عصبی و ناراحت روی صندلی هواپیما میشینه ابراهیم کنار در, در ایستاده و توی فکره بس نوری معامله باشه درش چی تا کت شلواره تنه دقیه منه دست ابراهیم کتش در میاره و دستش میگیره اوه شلوارشو میگه ابراهیم کت رو؟ ابراهیم کتو میذاره و میخواد ده. شلوارشو در بیاره کمی عقب میسته که رضا نبینه <تصفيق> خنده رضا ابراهیم توی همون حالت متوقف میکنه رمی سابگی؟ نه دقت میدم آخر هفته عروسیته نه خیره عروسی ابرمشوته چه سپایی داره خب ما هم که سابدوشیم دعوت سره با. چه شبی بشه تو, تو هیچ کاری تو سابقه داری؟ هیچ کس هر مثل تو رو هیش کس. هیش کس. بمشه. بمشه. ابراهیم توی ماشینه بارون میباره و برف پاکون ماشین کار میکنه دست ابراهیم هم مثل برف باکن، اشک چکیده از چشماشو پاک میکنه وانت ابراهیم جلوی ساختمانی شیک و بلند پارک شده سیما با جیپش از راه می ها رفت پیاده میشه. دو کارگر کارتونی رو حمل میکنن. سیما به خونه ابراهیم اومده. سیما خانم. چطوره؟ خوان خوان شده؟ دوره. دوره. دوره؟ کی اومده؟ بیا گوش زیر سلام, سلام خانم. مثل اینکه همه چی داره جو میشه ها؟ بله. بله. آن سیما خانم از کنم براتون اگر برای کنیم وقتی من میگم نه یعنی نه دوباره شروع نکن چون رئیسه که من بالا بیادم بچش حالا چی میخواد بگه بیخیالم انگلیش گیر شده سلام علیکم باز وقتی که شاخ دوم ندیدی اینجا من چاوسم تماما فرچی راضی دارم از صبح تا حالا دنگ گرفته که به جای عروسی محضر رفت کنی محضر خیر محضر اول چی وقت ضرر مفید خانم جو لیاقت نداره قدر نمیدونه خرید طلبه به جایی همه مزخ رفا دید به خودت بده زودتر اینجا رو آماده ای کن ما رو از آمادهی نجات پیدا کنیم خانم به خدا خسته شده آخه خوترم چه جایی زندگی؟ نه شما بگی ابراهیم سمت پنجره میره ابراهیم پنجره رو باز میکنه و از بالا رزا رو کلاه به سر در کنار ماشینش میبینه که بهش لبخند میزنه ابراهیم نگرانه هم پای پنجره میاد و ر رضا از ماشین فاصله میگیره و برای ابراهیم دست تکون میده. بازم اون این داده؟ حالا ابراهیم ناراحت و نگران میره و سیما توی پنجره میاد و پایینا نگاه میکنه. ابراهیم لبخند زنان برای سیما چای میریزه. به به چه چایی دم کردم به دیگه وقتش بودا ها. ابراهیم، میخام یه سوالی ازت بکنم. راجع به چی؟ به این بابا رفیقت لبخند ابراهیم معف میشه سیما به ابراهیم لبخند میزنه اما باور نکنه این ناجوریه اذیتت میکنه نه،, نه نه پسر خوبیه کار به کار مادر هم هداره. اگه همه چیزا میگه دولت شما زن دیگه میدونی که نمیشازه میگم اینجوری چیزایی سیما توی خونه خودش با تلفن بیسیم صحبت اصلا برای یه تا دیگه بهش زنگ بزنم چایشو از روی آشپزخونه अरे فخلی رضا فخلی अरे دیدی اگر برات مسودیت داره بگو اصلا نمیخوام به زحمت بیفتم نه نه من اصلا نمیگم سابقه داره من فقط یه کمی بهش شک دارم همین سینا مادر شام حاضره بیا این اصلا داستان داره نه بعدا برات میگم مادر جون شما شامتون رو بخورید من الان کار داره نه بابا با تو نبودم خیلی ازت ممنون مم. من آقا پس منتظر جوابتو هم نه چیتونه گی یه دیگه گوشیده است کنچکاف میره و تلویزیون رو روشن میکنه چطوری ممکنه یک نفر تمامه با این زمانی کم پس من منتظر تمامه ست هست خدا حافظ مکالمه رو قطع می‌کنه. سیما میسته و به تلویزیون نگاه میکنه برنامه برادرش علیه این ماجرات نگاهی به در خونه میکنه سمت در خونه دیره در رو باز میکنه سیاوش برادرشه تو خجالت نمیکشی این مسخره رو بازیار رو انداختی؟ آروم خواهش کرده؟ هم دروغی داره میخواد تحقیل مردم میدی برمیگه آروم باشین آروم باشی؟ سیما باباجون. این سنم و فریاد هیچ جایی آخه تو چرا تو که همه چی رو میدونی تو چرا این کارو کردی من از هیچی خبر ندارم بابا به خدا من دیگه گیت شدن شما هر کدومتون یه چیزی میگید میگید یه بابایی بوده شاید خیالاتش شدین از کجا مطمئنی هم تو اون وضعیت تو چه میدونی زفت برنامه چه وقت بخیری یه کلمه اینامرود بگی از زیشه میزنن توی این املکات که کشه بشه در همه هنوز گفتی یا نگفتی به تریجه قبایی یکی برمیخوره چه میدونم جامعه محترم پزشکان معمولین و زحمت فلان حق داری کاملا حق داری میخوای پیشرفت کنی راهشم بلدی نه پیشرفت تو حق نداری به من توحیم بکنی بله سلام نه بابا احسابه منم به هم ریختم میشه اینکه شما متوجه نیستی دارن آبروی هممون رو میبرن نگران نباش با این کارا تازه ماجرا داغ میشه یعنی دعوا اینم که میگن توی دعوا هر وقت قسمت نمیکنه حرف مفت وا زیاد حرس خود باش چیزی و اینا صحبت خداحافظ می شما خودتون قضاوت خانواده چم. کوسری تو از اسباب کشی کردن و همسرش مشغول په کردن اساسی است. علاقم کم خوب گوش کن ببین چی میگه. الان سری میرید چاپخونه. این تیترو یادداشت کن. بوزورگ میذارینش شماره فردا. نه نه. تیتر ندای قلم. آیا ابراهیم دروغ در میگوید؟ جی پی ما در اتوبان های تهران در حرکت کوساریام توی ماشینه و روزنامه می‌خونه. بر اساس اظهار نظر مسئولین، آنچه تاکنون در رابطه با ماجرای سقوط هواپیما گفته شده، همه واقعیت نبوده. آقا رو باز. <تصح> ما ظاهراً به دلایلی قضایا رو با روی جلد ابراهیم مصطره و دلواپسوی دفتر روزنامه هست که کوسری و سیما در باز می‌کنن واردیشم. انگار تو باختی؟ آقا دیشب تلویزیون آ پس تو هم دیدی خیلی نگرانم دلم شور میزنه آی دلم شور میزنه اصلا نگران نباشه چه اتفاقی نمیافته ما یه مصاحبه مطبوباتی رو میندازیم مصبه چه خودم دستم به دامنه؟ برای اینکه همه مسافرهای هواپیما بیام به نفع تو شادت بدم به این رو هم که فکر میکنی نیست بعد دی به سیاسی چطوریه؟ ممکنه به درد سر میفتیم تا چه می من اصلا دنبال اینجور درده سرام تو اگه نگران این تشکیلاتتی راحت بگو ای بابا سیما خانم تو رو خدا محلشون نذاری میترسم بدترش خدای نکرده ها مثل اینکه هوا حواسر نیسته. اونا دارن آداره تو رو رضا رزاست که آروم کنار در اتاق اومده خیلی باست ببخشی اتفاقی حرفاتون رو شمیدم جون مادره ولی رضا محل نمیذاره خیلی میخوام. قرتن دخالت ورده اتاق میشه و پیش ابراهیم میره. اما ثغرایی. اما مصیبت مقتوتی جکارا رو مثل آب خوردن میشه به ابوزر. جنابالی راه حل بهتری استراقتری. واره یعنی فکر می‌کنم بهتر باشه. جایی که همه هستن. دوستان، آشنایان، مسافران م... کجا؟ آ. آل سیاق ابراهیم به درز میفته. برایش برم ابراهیم از اتاق خارج میشه. شاروسی به شاروسی ابرام شد. ابراهیم از دستشویی بیرون میاد که با جلو برمیشه. نیست برم. رضا اینو میگه و میره. ابراهیم باز دل پیچه گرفته به دستشویی برمیگرده. رضا توی خونه روی سندلی هواپیما لم داده. امبار دست دستشه چشماشو بسته و برای خودش زمزمه میکنه که. مادم. خدا روزیت جایی دیگه حواله کنه یعنی آزای آقا خراب خرابه خراب و شکسته و به تفسیر اجاره بی اجاره منظور ناریسپاند از که در میزنه؟ کنجگاه میره و در باز میکنه سیماس با یه جعبه شیرینی سلام سلام ببخشید، سهر زده اومدم. این دو رو کار داشتم، گفتم بیام یه حال و احوالی هم با شما بکنم. صفای قرامتون. چای الان حاضر میشه. ببخشید، اینجا ریخته پاشه. مجردیه دیگه، خونه بی‌زن و کوره به زحمت افتادی. نمیخواد دلش. شما در نکنه از جبه شیرینی درمیاره و جلوی سیمان میذاره. یکی دو روی زمین میفته. خیلی دستپاچه است. بفرمایید، آنتون شیرینی. کار مادامه، خونگیام. ببخشید. خب من چایی که آوردم و بعدم اینم از شیرینی هم ببخشید و راحت باشه گفتم که من نایمدم اینجا مهمونی رفیق آقا ابراهیم رفیق مام هست اومدم یکیم با هم حرف بزنیم لط کردیم آقا رضا برای عروسی ابراهیم چی کار کردی؟ حسابی خودتو به دردسر سر انداختی چه درد سری؟ آدم برای رفیقش هر کاری بکنه کمه اونم آقا ابراه. تخت ابراهیم مجلسی گرمی میشه دو بار زندان بودی یه بار به جرمه چکه برگشتی یه بارم دزدی وضعیت اتاقتان که معلومت چی کاره ای خب رزا سراغ تعمیر دو چرایی که میدونیستم دیگه چه خبر خبرهایی تازدار مادم از تو بپرسم چه برای ابراهیم دیدی چرا این بد ازت میترسه چرا از خواهشو میپرسیم شما که بسیار سرطه باشید مثل مادر ترخوش کش میکنی نمیذارم با گردن کلفتی تلکش کنی انقدر لیچار بارو من نکنه خانون اعترام خودتن نگردو تو نره آقا رزا سب کن عدای آدمای مظلومم در نیار سالها تو زندان با آدمایی مثل تو سرکنده زدم میدونم برای درآوردن یک قرون دوزار حاضرین هر کاری بکنی رفاقت آدم دوز این حرفا رضا عصبی بلند میشه و مقابل سیما میایسته یه بار دیگه حرف بزنی هم چی دستشو بلند میکنه اما نگاهی به سیما خون سرد میندازه دستشو میاره پایین بهت میگم همینقدر بدون قبل که بالاش گریه میکنی که سوش نیست یه نگاه به با قله بالاش بنداز اصلا گروه خورش به این حرفو میخوره بچه مردنی از ریقش پیداست شما که اهل پلیس بازی هستی چرا خام شدی میخواد بگی بوده آره؟ اینم میشه دزد فداکار هرچی اصلا به خودم مربوطه راز کوچیدی دیدی کلی خلاف دیگه هم دارم که فقط خدا میدونه خودم اما نامرد نیستم اصلاً برا مهم نیست که باور کنی یا نه فقط اینه بدون اون موقعی که بین دوتا تا صندلی گیر کرده بود فکر کردن که آخره اون به خرچنگ بعد چار چنگولی را بری. ابرام بری ابراهیم فکر پنجره نشسته بود و زهر خانومو متعجب شده این جمله براش آشناس گفتم سیما نمیدونه چی بگه سرش سرشو پایین میندازه و از خونه آزان میره سیما توی ماشینه حسابی توی فکره ناراحتم هست تازه فهمیده که رضا بیراه نمیگه دفتر روزنامه تمام در و دیوار عکسای ابراهیمه سیما همه چیز برای کوسری و سیابش گفته فکری به ذهن آه، رسیده تازه داره ازش خوشم ابراهیم. ابراهیم از اتاق دیگه مستره و به دست میاد ابراهیم خیلی بالی خوش و با. خیلی بالی ابراهیم سر به زیر میدزه ابراهیم به همون اتاق برمیگرده کبسری شاید. پیش سیما و سیابش برمیگرده پس بگو چرا من مرده اینجوری به دست و پا افتاده که بریم محضر بریم محضر چی الف بچه آبرون هممون رو به بازی گرفته این پسر رزا چرا تا حالا هیچ نگو نمیدونم شاید چون سابقه داره ترسیده کسی حرفشو باور نکنه حالا باید چیکار کنیم هیچ همون کاری که تا حالا میکردیم یه آغار رضا بهش اضافه شده نه با من نگران نباش اینجور آدمها زیاد گرون نیستن. تیتر روزنامه ندای قلم آیا ابراهیم مسافران را نجات داده است؟ حقایقی تازه از سقوط هواپیما. سیما و سیاوش با ماشین سیما به جاده خاکی نزدیکی یکی از اتوبان‌های تهران اومده رفت آمدی اونجا نیست. ماشین متوقف میشه. سیما ماشین خاموش میکنه و پیاده میشه. سیاوش هم پیاده میشه و پیش سیما میره. اینجوریه که سیما این سیما این تو این بابا با با خورم بودم حالا کجا داری میری؟ بایش ها دقیقه ببینم سیما خان. تو مرلوم هستم چه سیما؟ یه دقیقه برست بسه آدم حرف زمه ببینیم چی میگون؟ نقاله اون روزنامه افشاگری اینا همه کار خود کسریه. این حرفا کدومه سیما؟ این وسط اگه کسی استفادهی می میبره رضا هستنه اون بند خود عقلش به این کارا میرسه؟ خیلی اگه همت کنه میره جلوی ابراهیما میگیره راه داره مزاحمش میشه برای اینکه به این کسری و من میشناسم من باش کار کردم نوع نوشتنشو میشناسم همه این نقالازی سر اونه می میفرمای این که داره دستی دستی آبرو خودش میبره میباره یه حرفو میزنه یه وقتایی havasش کاسبیش رونق میگیره چهار تا پولدار دیگه گیر میاره به هوای کمک‌های انسان دوستانه درازه بار خودش رو میبنده کسری برای عروسی ها داره بعضی وقتا از سادگی خودم به هم میخوره در کافی شاپی شیک کوسدی با رضا صحبت میکنه شک داشتم اما باور نمیکردم اینقدر آدم نامرد باشه همه ما رو گوزم ما مقابل مردم مسئولیم حالا هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم تا تو به حق برسی چجوری؟ شب عروسی چهار تا خوانگان میان سال پیچش میکنم چه جوری رفت اونجا؟ مسافره چه خیاردی بیرون؟ خلصه از این جور سوالا آه کابه میبرید میبرین بعد شما رو معرفی میکنی اولا این وسط چی گیری شما میاد؟ چی بهتر که مردم با حقیقت آشنا بشن این وسط ما از عذاب وجدان خلاص میشیم وجدان درد که قصه است تو سره بار زدی؟ زنده بودن من از بیکفنیه تو چی؟ هم از توبره میخوریم از آخو؟ مردشون رو همتون رو ببرن رضا بلند میشه که بره ای شزده. رزا پشت به کوسری میایسته کوسری بلند میشه و پیش رزا میاد شکم به گشنه و آرقه فندقی این قپیه بهت نمیاد به عزم نگاه نکن تو همون خراب شده بزرگ شدم که تو بزرگ شدی اگه سر خود کاری بکنی پوزتو تو میزنم رضا نگاهی به میکنه. اما اگه با من باشی بحظت خوب میشه و. همه غذ غولات هم میدی. اما اگه بخوای بخوای سیرابی بری و. تنهایی بخوری؟ اون وقت نمیذارم. قدم از قدم برده. شیرم شد؟ تعدادی بچه هشت ساله توی زمین خاک فوتبال بازی میکنن رضا کلای بافتنی استاده، به سر دورتر ایستاده به درخت تکیه کرده و اونا رو نگاه میکنه علی پسرش بین اوناست که گل میزنه <تصفح> رزا میخنده بازی تمام شده علی کاپشن و کوله رو بر میداره و میره. علی داره روی پل آبر میدوه که <تصفح> رزاست علی میسته بر میگرده پدرشو دیده رضا خودش رو به علی میرسونه مقابلش گزارون میشینه خوبی بابا علی با سر میگه بله تو هم خوب گل میزنی ها اینه پله علی میخنده رضا لحظه مکس میکنه دستی به سر علی میکشه و نمی‌تونه چیزی بگه بلند میشه نیسته و نرده های رو در دست میگم. علی آقا اه... یه چیزی عدد میکرسم دوسدرم راسته حسینی جواب بدی بیتارافا یعنی میخوام همون چیزی رو که فکر میکنی بگی فرض کن فرض کن اگه بهت بگم مسافرای اون هواپیمایی رو که سقوط کرده بود من نجات دادم باور میکنی بو چی فکرش چیکم اما میگه اگه تو. هر اون علی از پدرش جدا میشه. میدوه و میره. بر رضا تنها بود. نباید سیما توی خونه روی سندلی نهنوی نشسته و توی فکره سیما از اون سندلی بلند میشه و سندلی به حرکتش ادامه میده سیما مادر گوشی رو بردار با تو کار دارن گوشی رو بر میداره بردشت اما کن الو سیما به محل قرار اومده رزاست که کلاه بر سر منتظر سیما ایستاده خیلی باست ببخشه اون دفعه با خب آدمی زاده دیگه یه وقتایی از کور در میره. دست خودم نمونه الان که زمتتون انداختم واقعیتش کار خودم مونده. رضا توی خونه روی صندلی هواپمان نشسته و به قاب عکس زن مرحومش نگاه میکنه و جمله های سیمار به یاد میاره نمیخوام جایی تو باشم ر جایی تو تصمیمگیرم. آقا ای فطرلی همون که بوده چیزی رو از دست ندادم. ولی بعض ابراهی فر میکنه زندگی هم به تلنگاری به. این وسط فقط ابراهیم نیست که خراب میشه خیلی چیزایی دیگه از بین میره گاهی وقتا اردش کاری که انجام میشه از کسی که انجامش داده خیلی مهمه رزا نگاهی به عکس خودشو ابراهیم میلزه تصمیم میگرفته ابراهیم در خونشو باز میکنه رزا پشت دره اویف پلین کجا؟ گفتم رابیو بگو کجا وقتی که شدم رضا ابراهیم رو کنار لاشه هواپیما آورد ابراهیم راه میره و با رضا که عیصا صحبت میکنه دیگه به اینجام رسیده به خدا وریدم همش همش آدم به احترام میذارن ازم تشکر میکنن برام دعا میکنن منم اول بزنم بگم من کاری نکردم قابل شما رو نداره بابا من نمیذارم دیگه چه خبر بوده ابراهیم به پشت رضا رسیده خودم میرم فردا همه چی رو به همه میگم یا آخه بدبخت فلک زده میخوای ریش کنن رسوای اعله آدم بشی فرق میکنه نه برای تو چه فرق میکنه مگه تو خودت همه نمیخواستی نمیخواستی دقن بدی یه می‌خوای بی‌آورم کنی؟ حالا خودم می‌خوام. اگه تبه شهر هم مسخره کردن، بهتره زین گریفم شلوارم در بیارم. رضا دست بلند میکنه که بازم کشیده بزنه، اما ابراهیم دست روی سینه‌ش می‌گیره. حق هر دست رو بلند کردن، من سینه سپر کردم. یعنی بچه بودی، آب دماغت نمی‌تونه سیم کشی بالا. من هواتو داشتم. هر دو همزمان دستشون رو پایین میارن. اما حالا نامردی کردی. خب منم تلافی کردم. زدی زدمت حالا رضا راه میره و ابراهیم میستاده اصلا گیرم که گفتی کار تو نبوده و کار من بوده که چی؟ من یادم و خلافکارم یه دوز سابقه دار کسی دو هزار بارم نمیکنه؟ رضا از ابراهیم رو میگردونه و عشق می ریزه آبروم کجا بود؟ بچم تعویلم نمیگیره چه برسه به غریبه؟ بابا من کارم از این حرفا گذشته. اگه این آدم هارم از اینجا کشیدم بیرون خودش اتفاقی بوده مثل لب پوکنه کنومت بگم من داشتم میرفتم نمال قاچه ها حالا چه اکمتی بود این جلون صحب شد خودم میگه اما چی هم سرده گردم بندو از جیبش در میارو به ابراهیم نشون میده این اموال سیما خانومه اگه من هموران نرسیده بودن هم قارت کرده بودم منو چیبه کاری اسام تو با فرق میکنه. آخار دو فتری و سوای روزگاه هست. آب ابراهام خوشه. نظر از اینی که هستم بی کس در بشن. بشکم به چی من از هنین جورشت هم نیمارم. این گیر یه کونی ان تو گوشاته ها که وایسری مانم واش دادم یارو جا خورده بود و باز نمیشود ما چون بله. باز تو آدم بل بالاخره عروسی برپا شده زهره با لباس عروسی سر صفره عقد سیما هم بالای سرشه. اما مستربه کمی لبخند میزنه همون پیرمرد مسافر پولدار با نوش هم اومده ابراهیم دورتر با کت زرشکی به مهمون ها خوش آمد میده سیما و سیاوش در گوشی با هم صحبت میکنن اما از رضا خبری نیست. فیلم بردار تلویزیون فیلم برداری میکنه مسافرهای هواپیما همه حضور دارن و پذیرایی میشن رزا لباس پوشیده و آماده رفتن به عروسیه که برزو و همراه مرد لات توی قهره خونه وارد اتاقش میشن بحبه آقا رزو خانه فتالی چند وقتی حالی از ما نمی پرسی آقا رزا الان دارم میرم بیرون او سلام ندارم جنسانه تعبیل بده هر گرسونی که بخوای بری میتونی بری دوش آقا برزو الان بختش دارم نواصله شد برده صبح تو قهره خونه میب اتفاقا منم حال و خوشی ندارم یا جنسار تعبیر میدی یا جنازت از اینجا میره بیرون بر سر عروس نقل میپاشن مادام از کیسه نقلی که دست مادر زهره است نقل برمیداره و میپاشه کوسری میکروفون رو به دست گرفته و میونداری میکنه سیما نگرانتر میشه ابراهیم بدتر از سیما به هم نگاه میکنه یه مسائلی امشب در اینجا مشخص بشه فکر کردیم بهترین جا برای پاسخ دادن به این تهمتا همین جاست. برای همینم از آقای ابراهیم تارابادی خواهش میکنیم تشریف بیارند روی صحنه و در حضور شما مسافرین محترم هواپیما، مهمانان عزیز یه بار دیگه واجبه توضیح بدم. ابراهیم تشویق مهمونا رو می‌بینه. نگاهی به سیما میکنه. اما نگرانیش اجازه بلند شدن نمیده. سیاوش پیش ابراهیم میاد و او رو بلند می‌کنه. سیاوش لبخند داره اما مگه ابراهیم میتونه حتی لبخند بزنه ابراهیم آروم آروم پیش کوسری میره و میکروفون ازش میگیره کوسری که فقط منتظر رضا بیاد و ابراهیم کنف بشه خندان از صحنه پایین میره و دست میزنه سیما به ابراهیم نگاه میکنه کوسری در کنار سیاوش نگاهی به ساعتش میکنه ابراهیم بالاخره با لبای لرزان شروع میکنه من؟ من داشت میرفتم واسه خرید جوجه یه روزه دو مرد لات رضا رو کتک می زنن رضا خورده توی کمادد ابراهیم ادامه ماجره رو تعریف میکنه بغض داره سیما ما تو مبود نگاش میکنه کبسری جا خورده سیاوش به ابراهیم نگاه میکنه ضربه دیگه به رضا و برخوردش به رادیوی قدیمیش ابراهیم با چشمانی نمناک که ادامه میده لحظه نمیتونه حرف بزنه اما میگه سیما لبخندی هاکی از رضایت داره چون ابراهیم مو به مو داره ماجرا رو نگیر رضا در اثر ضربه دو مرد به میز میخور و زمین میافته ابراهیم عشق میریزه و با گوشه آستینش عشقش رو پاک میکنه سیما حسابی داره میخند مشت مرد رضا رو روی سندلی هواپیما پرت میکنه ابراهیم به حق حق افتاده و نمیتونه دیگه حرف بزنه رضا به تاخچه خونش میخوره دهنش خونیه مرد لات یقیه رزا رو میگیره و با سر توی سرش میکوبه. رزا به دیوار میخوره و پیشونش هم خونی میشه صورت ابراهیم خیص عشقه سیما هم عشق میلیزه. من فکر میکنم این رضا فتلیه کلاور داره کار اینه ببیچه بیچاره. جوابی نداره رزا بی روی تختش در کنار قابع عکس همسرش افتاده که برزو بالای سرش میاد و کنارش میشه ما توی این کار با کسی شوخی نداریم انقدر ازت شک و سفته سفید امضا دارم که اگر بخوام میتونم تا آخر اون تو زندان نگرت دارم تا بپوسی حالا اگر تا فردا عقل دو از سر جاشو جنس را آوردی چه هیچ ویلا جا توی زندانه رضا نای حرف زدن نداره رضا به سختی بلند میشه میشینه نفسش به خوبی بالا نمیاد اتاقش هم حسابی به هم ریخته دست میکنه و ساعتش هم رو بر میداره نگاه میکنه خیلی دیر شده خودش رو به جالباسی که کج شده میرسونه شال گردن زرشگیش رو بر میداره دور گردنش میندازه و میره عروسی تمام شده در تاریکی شب چراهای رنگی توی آب حوز منظره زیبایی رو ایجاد کردن رضا به حوز رسیده. پاشو لبه حوز میذاره نگاهی توی آب میندازه. کارگرا دارن میز و صندلی‌ها رو جمع می‌کنند. رضا تلو تلو خوران میره و روی قسمتی که سن خواننده بود می‌شینه. سیما از ساختمون بیرون میاد. توی درگاهی لحظه‌ای نیسته نگاهی میکنه و به طرف رضا میره. با لبخند به رضا که حالا خون پیشونیش روی صورتش هم اومده نزدیک میشه. رزا متوجه شده اما روشو بر نمیگردونه چی شد؟ هیچی رو جا نداخته بودی حتی خرچنگی را رفتن من خوب یادش داده بودی اونقدر خوب که منم شاید کرد. رزا تلخی می زنه دوتو نوازنده دورگرد وارد حیات میشه پسر بسر بچه یه باشونه این رزا که قطره اشکی گوشه چشمشه به سختی بلند میشه تلو تلو خوران به طرف بچه میره پولی به بچه میده دستی به سرش میکشه و پیش نوازنده میره سیما به رفتن رزا نگاه میکنه بغض میکنه و سرش رو پایی میدازه توی کوچه ایستاده. نگاهی میکنه و نامتادل به سمت تاریکی حرکت میکنه مدتی گذشته رضا از راهروی میگذره در آهنی پشت سرش بسته میشه و رضا از زندان آزاد میشه و بیرون میاد صورتش هم کاملا خوب شده با کلای کش بافش کنار خیابون منتظر ماشینه جلوی ماشینی دست بلند میکنه اما نمیریسته جاده خلوته نگاهی میکنه هیچ ماشینی نیست صدای ماشینی توجهش جلب کرده برمیگرده آ همون وانت قرمز قدیمی و درب و داغون ابراهیمه ماشین کنار رو جاده توقف میکنه ابراهیم با کلاه کشباف کفش و شلوار کهنه و یه کت کرم رنگ شیک از ماشین پیاده میشه دزگیر ماشین رو میزنه سلام اه... رسیدن بخیر. تو که هرچی گیر آورده بودی دادی واسه بیرون آوردن من؟ بدای شرد مانیر خانمه شجور رازی کردی؟ آه دوستان داره حالا راضی که نشد ولی تو من نمیشتاسی علا حرف زور نیستم هر حرف, حرف خودمه گوش کسی تو سرم بزنه اینه که هرچی باقی مونده دادم بهشون گفتم مهرم حالا جورم آزاد شوخی نداره با پسیل ابراهیم از اون ور جاده پیش رضا میاد رضا چپ چپ نگاهی به ابراهیم میکنه بابا نمی چرا؟ از توی ور هر کاری که بگی بر میاد مطلق میدازی رضا و ابراهیم به طرف ماشین میرن ابراهیم دزگیر رو میزنه در ماشین برای رضا باز میکنه با احترام ازش دعوت میکنه که پشت رول بشه و رضا هم میشه میشینه. من میره و میشه حالا وانت قرمزرنگ رنگ کهنه و قدیمی و فرسوده یادگش یک دوستی عمیق و نو و تازه میشه و در جاده زندگی به حرکت در میاد که این خودش داستان داره. بردار خوب این برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی بودند و, بودن و تهیه کننده و سردبیر فرشاد آذرنیا. بنده هم که در خدمت شما بودم و نویسندگی و گویندگی این برنامه رو به حده داشتم بهرام سربری نژاد. امیدوارم هر جا هستین سلامت باشین و سال بسیار خوبی رو هم داشته باشین. تا رادیو فیلم دیگه خدا نگهدار.